بگو کسی که دشمن جبرئیل است در واقع دشمن خداست چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرده است در حالی که کتاب کتاب‌های آسمانی پیش از آن و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است